بسم الله الرحمن الرحیم از بیت چارده هم تا بی در دو بیت بعدی یعنی چارده و پانزه اسبابی رو که شخص ارث میبره رو بیان میکنه بعدش موانعی رو که میبینی اسباب فراهمه ولی باز هم شخص ارث نمیبره و در بیت های بعدی میراس بران رو معرفی میکند چون هر نذیکی هر فامیلی ایرس نمیبره اونایی رو که ارث میبرن بیان میکنه میگه اسباب و میراث الوراثه ثلاثه کل یفید ربه الوراثه اسباب میراث خلق 6 تا هست هر یکی از این سه تا صاحبش رو مستحق ایرس میکنه کل یفید ربه الوراثه هر یکی از این سبب سبب میشه که صاحبش ارث ببره اون ستا چیزی هستن و هی نکاح و ولاء و نسب معبادهن للمواریثی سبب اینها عبارتنده از نکاح ولاء و نسب زن از شوهرش عرص میبره شوهر از زن پس یکی از از صاحب نکاحه دو ولاء شخصی بردهی داشته او اونو آزاد کرده حالا چه زن باشه آزاد کننده چی مرد یا عصبه هاشون و سبب سوم نصب هست فرزند از پدرش پدر از فرزند مادر از فرزند فرزند از مادر و بقیه ای که در ادامه اینا رو توضیح میده ما بعد این اسباب معباد این سه چیز برای میرا سببند یعنی اگر چونانچه یکی از این تا وجود نداشت مثلا مال به به مال سپرد میشه خب پس اینا بودند اسباب میراس البته اسباب اتفاقی وگر نه در اختلافی بیت المال هم داخل است. بعضی از فقها میگویند که اگر چنان چه این نبودن مال به بیت المال داده میشه و سبب ارث بردن است. پس اینا بودند اسباب میراست که سه چیز بودند، نکاح و ولا و نسب، و در بیت شانزه و هیفته موانع ارث رو بیان میکنه که شخص سبب فراهم ولی با این وجود عرص نمیبره و یمن و شخص من المیراثی واحدتون من الالین ثلاثی. و منع می شخص رو از می بردن یکی از علت های سگانه چیان؟ رقون و قتلون و اختلاف دینه یک بردگی برده نه ارس میبرد نه ازش ارس میبرند. دیگه چی؟ و قتل قتل از موانع ارس هست اگر شخصی اومد اصلا پدرش رو کشت ازش ارس نمیبرد و اختلاف و, دین و اختلاف دین نه کافر از مسلمان ارس میبرد و نه مسلمان از کافر پس موانع ارس ستا شدند همانطور که اسبابش ستا بودند بردگی و قتل و اختلاف دین اگه این ستا وجود داشتند ارسی برده نمیشود ففهم فلیس شک و کل بفهم که شک به بماننده یقین نیست پس اینجا کار اسباب میراس رو بیان کرد موانش رو بیان کرد حالا در بیت هیچده هم به بعد تا بیس و میاد میراث بران مرد رو بیان میکنه از مردان چه افرادی ارث میبرن از میت از اونی که فوت کرده است والوارثون من الرجال عشره اسماؤهم عروفت مشتهره میگه میراث بران مرد ده تا میباشند اسم هاشون معروف و مشهورند البته اجمالی که بیاد بگه اگر مفصل بیاد بگه که 15 تا میشن پسر و ابن الابنی مهما نزل والابو والجد له وان علا یعنی میراث بران ابر مذکرون میبره یک ابن دو یک پسر دو پسر پسر مهما نزلا هر چقدر پایین تر باشه یعنی پسره, پسره پسر پسر هر چه پایین تر باشه در وسطش هم مذکرن ارس میبرن بعد از ابن ابل والابو پدر بعدش پدر بزرگ البته پدر بزرگ پدری خودش گفته والابو له یعنی پدر، پدر و پدر بزرگ، پدری و ان علا و هر چه بالاتر بره یعنی پدر پدر پدر پدر چهارمین جت پنجمین ششومی هر چه بالاتر بره ارث می‌بره باشه باشرایتی که بعدن بیان میشه میراث بعدی در بیت بیستون بیان میشه وال اخو من ای جهاتی کان قد انزل الله به القرآن برادر از هر جهتی که باشه الله در این مورد قرآن نازل کرده یعنی برادر چه برادر شقیقه باشه با میت پدر و مادرش کی باشن چه فقط برادر پدری باشه یعنی پدرش با پدر میت کی باشه یا مادری باشه یعنی مادرش با مادر میت کی باشه از هر جهتی که باشه میگه والاخو من ای الجهات کان در بیت 21 میراث بر مذکر بعدی رو بیان میکنه و ابن الاخ المدلی الیه بالاب فاسمع مقالا لیسه و پسر برادری که وصل میشه بامیت از طریق پدر. و ابن الاخ المدلی الهی بالابی و پسر برادری که وصل میشه بامیت از طریق پدر. فاسمع مقالا لیسه بالمكذب بشنو سخنی را که تکزیب شده نیست. والعم خوب در اینجا البته گفته بود برادر پدری ولی ابن اخه شقیق هم ارس میبری یعنی <خصف> پسر برادری که وصل هست به میت از طرف پدر و اون پسر برادری که از طرف پدر چرا نگفت شقیق خوب مسلمه دیگه موقعی پسر برادری که فقط پدر اون برادر با میت یکیه زمانی که پسر برادری باشه که هم پدر و هم مادر شیکی به طریق اولادگی این فصاحت گوینده رو میرسونه بله میگه ابن الاخ مدلی الیه بالابی و برادر زاده ای که اون برادر با میت استریفق پدر برادر است پس برادر شقیقه رو هم شامل میشه فسم ما قالا نیست به المکرری. بیشنو سخنی راکه تکذیب نشود است. یعنی تمام مسلمین برین باورند. والعم و ابن العم من آبیه فشکر لذِل اجازه و تنبه. و میراس بر بادی آمو هست. آمو برادر پدر. و ابن العم من آبیه و پسر آموی که از طرف پدر هست. یعنی آمو میراث بر است پسر امو هم میراث بر است البته رو بعدن بیان میکنه ولی فعلا فقط میگه کدوما ارث میبرن این معنیش نیست که همه اینا همزمان ارث میبرن نه ولی اینه که از جزء میراست میراث بران هست پس امو پسر امو امو فرقی ند میکنه طرف پدر و مادر اموش باشه یعنی پدر و مادرش با پدر میتیکی باشن یا فقط پدر اون امو با پدرش از طرف پدر فقط با هم برادر باشند. مادراشون با هم دیگه فرق داشته باشه. اموهای پدری داریم اموهای شقیقه داریم. و همچنین پسر امویی که از طرف پدر یا اموی شقیقه باشد. فشکر لدل ایجازی و تنبیهی اینجا دیگه گوینده میگه که تشکری داشته باش از کسی که مختصر داره بیان میکنه آگاه میکنه یعنی خود مؤلف رحمت الله علیه و والمعتق و ذو الولائی فجملت میراسبر بعدی شوهر هست و بعدی معتق هست آزاد کننده اونی که اومده برده رو آزاد کرده هست که بهش میگن فجملت و ذکوری هاولای ها تمام مردان میراسبر اینا بودند پس در سه بیت بعدی میراسبران زن بیان میکنه یک دو سه چار پنج شش. در شش بیت میراسبران مرد بیان کرد که به شکل اجمالی ده تا بودن الان میراسبران زن را میکنه که به شکل اجمالی هفته هستن یعنی تفصیلی بیشتر میتونن مثلا گفت برادر ازرس میبره آه به شکل اجمالی یک نفرش حساب کرد اگر ما بیات تفصیلی برادر برادری که شقیقه هست برادری که پدری هست و برادری که مادری هست سه تا برادر میشن به شکل تفصیلی ولی اون به شکل اجمالی فقط اومد و گفت برادر پس به این خاطر ده نفر اونا رو حساب کرد و اینجا زنان رو هم هفت نفر حساب میکنه چون خواهر و دیگه با تفصیل مثلا بیان نمیکنه ول وارثات من النساء سبع زنان ارث برنده هفت تا هستند لم يعطي انثا شرع شرعه زنی دیگر به غیر از رو شرع ارث نداده است لم يعطي انثا غیرهن شرع شرع فاعلی که در آخر اومده میگه نداده است زنی دیگر به غیر از این زنانی رو که اینجا نام برده میده شما ارث شرع شرع زنی دیگر به غیر از رو ارث نداده است بله چون زاویه ارحامو دیگه اینجا نمیاره به خاطر اینکه اختلافی هست و زاویه و تمام فقها میروس بر نمیدونند میگه بنتون اولین زنی که ارس میبره اسمش میاره اینجا ذکر میکنه دختر هست و بنتو ابنن دختر پسر شخصی فوت کرده یک دختر داره این ارس می شخصی فوت کرده دختر پسر داره دختر پسرش پسر که فوت کرده دختر داره اون پسر ارث میبره یک دوم اگه تنها باشه و تفصیلاتی که بعدا خواهد آمد پس فعلا میگه گروهی رو که ارث میبرند یک دختر دو دختر پسر و اون من مشفقه سه مادر دلسوز ولی تو منظورش این نیست که اگه مادر دلسوز نواشه ارس نمیاره این صفت مادر معمولا و زوجه و جدتون و معتقه چهار زن پنج مادر بزرگ شیش آزاد کننده مثل بیبی آیشه که بریره رو آزاد کرد و ارسش رو معتقهش هست بله پس اینا شدن شیشتا تا می رو در بیت 26 بیان کرده و من ایل الجهات کانت و خواهر از هر جهتی که باشه ارس می بره منظور این که چه شقیقه باشه چه خواهر پدری باشه و چه مادری باشه فهذه عدتهن بانت نباند این بود تعدادشون که آشکار شد بیان شد مشخص شد بله به بیت 23 رسیدیم ان درس بعدی رو به با باذن الله جلسه بعدی ادامه خواهیم داد